قبل از هر چیز ارز سلام و خیر مقدم دارم محضر همه شما آشقان قرآن و عزیزانی که برای نور گرفتن از قرآن در این هوای زمستانی از راه دور و نزدیک در این محفل و جلسه نورانی حضور پیدا کردید و تشکر می کنم از مدیریت محترم حوزه علمیه تعلیم القرآن خوشک سراوان که همه ساله در چنین ایامی به خاطر تقدیر و عظمت قرآن کریم و گرامی داشت حافظان قرآن چنین جلسه نورانی را برگزار میکنند. حضور همه شما عزیزان بیویجه بی علمای بزرگوار، ائمه جمعه، مدرسین اساتید حوضه علمیه و حفاظ و در رأسشون علمای گرانقدری که یادگار سلف صالح هستند جناب مولانا ساداتی، رئیس علمایش، سرابان بزرگ جناب مولانا عبدالکریم حسینپور، مدیر حوزه علمیه عین علوم گشت سرابان و یادگار مرحوم شیخ الحدیث عارف بالله جناب حافظ احمد گوهر و سایر عزیزانی که نمیشه نام برد حضور همه عزیزان را در این جلسه گرامی میدارین قصد سخرانی نیست همچنین ازخایی میکنم نماینده جناب شیخ الاسلام مولانا گرگیچ که با سخنان سیاسی و عبادیشان جلسه ما را به وجد در آوردند و استفاده کافی و وافی را انشالله همه عزیزان از سخنان ایشان بردند و صورت قصد سخنرانی نیست چون من خودم در حقیقت میزبان جلسه هستم و به نوعی خودم هم مریض و معذور هدفم این بود که جناب مولانا امر کردند و من اطاعت آیه ای را که محضر شما تلاوت کردم آیه است که بالا سر من و شما نوشته انها در قرآن یهدی للتی هی اقوام فقط و فقط قرآن هست که انسانها را به بهترین مسیر و به بهترین راه هدایت میکنه راه نمائی میکنه و راه نشان میده قرآن که زندگی انسانها را میسازه و راه نجات همه انسانها بلا استثنا فقط چنگ زدن به قرآن هست و کسی که به قرآن چنگ بزنه و متوسط به قرآن باشه هم دنیای او آباد هست و هم قیامت او آباده و اگر بهتر نگاه بکنیم هدف از رسالت را در چندین آیه ما در قرآن کریم مشاهده می کنیم که خداوند سبحان هدف از رسالت با این عظمت را و هدف از رسالت تمام انبیارا یک چیز بیان می کنه. قرآن کریم فرمایند: هو اللذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة هدف از رسالت تمام الأنبياء و جناب النبي کریم عليه السلام, السلام بانه خاتم الأنبياء شیر اینکه انبیاء نیامدند که دنیا را به انسان رسما بیاموزند ساختمان سازی و کشاورزی و جاده سازی انبیاء آمدند که اصل را اساس را درست کنند وقتی اساس انسانیت درست شد و انسانیت از گمراهی نجات پیدا کرد از شرک و بطپرستی مثل سوی وحدت و توحید برگشت همه چیز انسان محیا و آماده میشه اینه که قرآن میفرماین خداوند آن است که به اصف الامیین رسول از بین انسان های ناخوانده و به مدرسه نرفته و بی سواد را از بینشون انتخاب کرد برای سه هدف یترو عليهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه اولین هدف رسالت تلاوت آیات پیغمبر آمد که قرآن را به عنوان معلم کتابی که بر قلب او از طرف خداوند نازل شد و کتابی که شما جلوتر از زبان سخنرانان شنیدید که تنزیلٌ من رب العالمین نزل به روح الامین کتابی که به وسیله جبرایل بر قلب پیانبر نازل شد پیامبر آمد که این کتاب را تلاوک بکنه و به ما بیاموزه که راه انسانیت راه خلاشناسی راه توحید راه, راه نجات بشریت این هست و یو ان انبیاء آمدن پیانبر آمد که ها را تذکیه کنه شما وقتی عنوان وزارت آموزش پرورش رو نگاه می‌کنید آموزش و پرورش یعنی آموزش به تنها کارامد نیست، کارساز نیست باید در کنارش پرورش باشه، تزکیه باشه. در کنار تعلیم تزکیه لازم هست. اگر تعلیم و تزکیه هر دو در کنار هم قرار بگیرند انسان موافقه، امروز اگر در غرب انسانیت نیست، محبت نیست، برادری نیست، ظلم و جنایت و تجاوز هست، فراموشی از خدا و دوری از خداست چون تزکیه نیست، تزکیه جایش خالیه پیانبر آمد که قرآن را به ما بیاموزه و ما را تزکیه کنه درون ما را از بطپرستی و از معزلات و از عقیده باطل و سنگ پرستی و جهالت پاک و پاکیزه کنه و یعلم الكتاب والحکمه پیانبر آمد که کتاب و حکمت و دانش را به ما بیاموزه عزیزان این جلساتی که برگزار میشه به خاطر عظمت قرآن سه چهار ساله که این جلسات به های مختلف کرونا و بسری مسائل کمرنگ شد برگزار نشد واقعا مردم جلسات دلتنگ این جلسات هستند. و تنها چیزی که به همه مردم و مسلمانان ببیجه مردم این استان نور میبخشید آرامش میبخشید انسجام و وحدت را براشون فراهم میکرد و حضور شیخ الاسلام در تمام جلسات در ایام ختم بخاری نورانی می درخشید حضور همه علما نتیجهش این بود که مردم قلبشون می تفید مردم قلبشون به قرآن وابسته بود به قرآن وابسته است و هنوز هم همه عروض مندند که هرچی سریعتر این نوه همایش های علمی و دینی و قرآنی توسط مدیران حوضه های علمیه و مکاتب برگزار بشه تا این اتحاد و انسجام و قرآن دوستی و عالم دوستی و مسجد دوستی و این وحدت ها بر جا بمانه امیدواریم که انشالله به برکت قرآن کریم این ای که زده شده در پایان سال تحصیلی حوضه های علمیه پررنگ تر باشه جلسات ختم بخاری جلسات ختم قرآن کریم انشالله در شهرهای مختلف در سطح استانمون در سطح کشورمون برگزار بشه و جوانان ما مردم ما تحصیل کردگان ما فرهنگیان ما بازاریان ما همونطوری که همواره حضور گسترده داشتند انشاءالله با حضور فعالتری در این جلسات حضور قلا بکنند و اهد و پیمانشون با دین و با قرآن و با پیانبر و با خدایشون انشاءالله مستحکمتر باشه خب عزیزان و بزرگوارانی هستند که انشاءالله همه ما در انتظار سخنان و دعا دعاهای ایشان هستیم من بنابراین بیش از این مصده وقت ازدان نمیشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود.